فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ به نام خداوند بخشنده بخشادشگر از تو درباره انفال قنایم و هر گونه مال بدون مال که مشخص سؤال میکنند بگو انفال مخصوص خدا و پیام برست پس از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و خصومت‌های را که در میان شماست آشتی دهید و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم وعلى تنها کسانی هستند که <كه> هرگاه نام خدا برده شود دلهاشان ترسان میگردد. و هنگامی که آیات او بر آنها خانده می‌شود، ایمانشان فزونتر می‌گردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارند. و مما آنها که نماز را بر پا می‌دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم اولئی که هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم و مغفرت و رزق کریم آری مؤمنان حقیقی آنها هستند برای آنان درجاتی مهم نزد پروردگارشان است و برای آنها آمرزش واروزی بی‌نقص و عیب است. کما ربک من و ان من همان گونه که خدا تو را به حق از خانه به سوی میدان بدر بیرون فرستاد در حالی که گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند ولی سرانجامش پیروزی بود ناخشنودی عدهای از چگونگی تقسیم قلایم بدر نیز چنین است یجادلونك فی الحق بعدما تبین كأنما یساقون الی الموت وهم نظرون آنها پس از روشن شدن حق بازبات و مجادله میکردند و چنان ترس و وحشت آنها را فرا گرفته بود که گویی به سوی مرگ رانده میشوند و آن را با چشم خود می نگرند و اذا الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله و يريد الله ان یحق الحق بكلماته و دابر عداب را الكافرین و بیا هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه کاروان تجاری قریش یا لشکر مسلح آنها نصیب شما خواهد بود و شما دوست می داشتید که کاروان غیر مسلح برای شما باشد و بر آن پیروز شوید ولی خداوند میخواهد حق را با کلمات خود تقویت و ریشه کافران را قطع کند از این رو شما را بر خلاف میلتان با لشکر قریش درگیر ساخت و آن پیروزی بزرگ نصیبتان شد لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَهُ كَرِهَ المجرمون تا حق را تثبیت کند و باطل را از میان بردارد هرچند مجرمان کراحت داشته باشند اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم فاستجاب لکم انی ممیدکم بی من الملائکت مردفین به خاطر بیاورید زمانی را که از شدت ناراحتی در میدان بدر از پروردگارتان کمک می‌خواستید، و او خواسته شما را پذیرفت و گفت: من شما را با گیک هزار از فرشتگان که پشت سر هم فرود می آیند یاری می کنم. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا مُبَشِّرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ولی خدابند این را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد وگرنه پیروزی جز از طرف خدا نیست خداوند تباناب و حکیم است اذی غشیكم نعاس امنتا منه و ينزل, عليكم و ينزل عليكم من السماء ماء لیطهركم قیراکن به ویذ به عنكم رجز الشیطان وليربق على ق بکن ولی به الأقدم و یاد آورید هنگامی را که خواب سبکی که مایه آرامش از سوی خدا بود شما را فرا گرفت و آبی از آسمان برای تن فرستاد تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهایتان را محکم و گامها را با آن استوار دارد ای یوحى ربك الى الملائكه معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا رعبا فاضربوا فوق الاناق واضربوا واضربوا منهم كل بنان طب یادر موقع عراق پروردگارت به فرشتگان وحی کرد من با شما هستم کسانی را که ایمان آورده اند ثابت قدم دارید به زودی در دلهای کافران ترس و وحشت میافکنم. ضربه ها را بر بالاتر از گردن فرو دارید و همه انگشتانشان را قطع کنید ذالک بی انهم شاق الله و رسوله و من یشاقق الله و رسوله فإن الله شدید العقاب این به خاطر است که آنها با خدا و پیام برش دشمنی ورزیدند و هر کس با خدا و پیام برش دشمنی کند کیفر شدیدی میبیند و خداوند سخت کیفر است. و ان عذاب النار. این مجازات دنیا را بچشید. و برای کافران مجازات آتش در جهان دیگر خواهد بود ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبرو شوید به آنها پوشت نکنید و فرار ننمایید. و می و یوم ائذی دبره او، الا متحرف لقتال، او متحیز، او متحیزا، الافئات، فقد با بغضب من الله و جهنم، وبئس بئس المصیر. کس در آن هنگام به آنها پشت کند مگر آن هدفش کنارگیری از میدان برای حمله مجدد و یا به قصد پیوستن به گروهی از مجاهدان بوده باشد چون این کسی به قذب خدا گرفتار خواهد شد و جایگاه او جهنم است و چه بد سرانجامیست فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم إین شما نبودید كه آنها را كشتید بلکه خداوند آنها را کشت و این تو نبودی ای پیامبر که خاک و سنگ به صورت آنها انداختی بلکه خدا انداخت و خدا میخواست مؤمنان را به این وسیله امتحان خوبی کند خداوند شنوا و داناست و أن الله سرنوشت مؤمنان و کافران همان بود که دیدید و خداوند سوست کننده نقشه های کافران است این تستفتح فقد جاءکم الفتح و اینت فهو خیر لكم و تعودون عد ولن تغنی عنکم فیعتکم شیئن ولو کثرت و لو کثرت و الله مع اگر شما فتح و پیروزی میخواهید پیروزی به سراغ شما آمد و اگر از مخالفت خود داری کنید برای شما بهتر است و اگر بازگردید ما هم باز خواهیم گشت و جمعیت شما هرچند زیاد باشد شما را از یاری خدا بی نیاز نخواهد کرد و خداوند با مؤمنان است یا ایوها اطیعوا الله و ولا تولوا عنه و تسمعون ای کسانی که ایمان آورده اید خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و سرپیچی ننمایید در حالی که سخنان او را می شنبید. و لا كالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون و همانند کسانی نباشید که میگفتند شنیدیم ولی در حقیقت نمیشنیدند. ان شر والدواء عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون بدترین جنبندگان نصب خدا افراد کر هستند که اندیشه نمی کنند. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولو و هم معرضون و اگر خداوند خیری در آنها میدانست حرف حق را به گوش آنها میرساند. رساند بلی با این حال که دارند اگر حق را به گوش آنها برساند سرپیچی کرده و روی گردان می شوند يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله إِذَا وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إلي تحشرون دعوت خدا و پیام بر را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی میخواند که شما را حیات میبخشد و بدانید خداوند میان انسان و قلب او حایل می شود. و همه شما در قیامت نزد او گردآوری میشوید شوید و فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکن خاص ان الله شدید العقاب و از فتنه بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی رسد بلکه همه را فرا خواهد گرفت چرا که دیگران سکوت اختیار کردند و بدانید خداوند سخت کیفر است اذکروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وانيدكم بنصره ورزقكم و رزقكم من الطیبات لعلكم تشکرون و به خاطر بیاورید هنگامی را که شما در روی زمین گروهی کوچک و اندک و زبون بودید آنچنان که میترسیدید مردم شما را برو بایند. ولی او شما را پناه داد و با یاری خود تقویت کرد و از روزی های پاکیزه بحرمند ساخت شاید شکر نعمتش را بجا جا آورید یا ایوها الذین آمنوا لا تخونوا الله و وتخونوا و تخونوا اماناتكم و تخونوا اماناتكم و تعلمون ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا و پیامبر خیانت نکنید و نیز در های خود خیانت روا مدارید در حالی که می دانید این کار گناه بزرگیست. وعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده و ان الله عنده و بدانید اموال و اولاد شما وسیله آزمایش هست و برای کسانی که از احده امتحان برایند پاداش عظیمی نزد خداست یا ایوها الذین آمنوا این تدقوا الله یجعل لكم فرقانا یجعل لكم فرقانا و عنكم عنکم سیئاتکم لكم والله ذو الفضل العظیم ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید برای شما وسیله ای جهت جدا ساختن حق از باطل قرار میدهد و گناهانتان را میپوشاند و شما را می آمرزد و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است و ایذ یمکر بکالذین کسرون یثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون الله والله خیر بخاطر بیاور هنگامی را که کافران نقشه میکشیدند کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا به قتل برسانند و یا از مکه خارج سازند آنها چاره می و نقشه میکشیدند و خداوند هم تدبیر میکرد و خدا بهترین چاره جویان و تدبیر کنندگان است وإذا تُطل عليهم آياتونَ قال قد سمع لَ شاءلَ قَُّ مثل هذا إن هذا إنه إِلا أسطير الأولين و هنگامی که آيات ما بر آنها خوانده خونده میش می شنیدیم چیز مهمی نیست. ما هم اگر بخواهیم مثل آن را میگوییم اینها همان افسانه های پیشینیان است ولی دروغ میگویند و هرگز مثل آن را نمی آورند واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا خِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اَوِیْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ و به خاطر بیاور زمانی را که گفتند پروردگارا اگر این حق است و از طرف توست بارانی از سنگ از آسمان بر ما فرودار یا عذاب دردناکی برای ما بفرست و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم ولی ای پیامبر تا تو در میان آنها هستی خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد و نیز تا استقفار می کنند، خدا عذابشان نمیکند ومالهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء وَمَا كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون چرا خدا آنها را مجازات نکند با اینکه از عبادت موحدان در کنار مسجد الحرام جلوگیری می کنند در حالی که سرپرست آن نیستند سرپرست آن فقط پرهیزگارانند ولی بیشتر آنها نمی دانند و ما کان صلاتهم عند البيت إلا و فذوقوا العذاب آنها که مدعی هستند ما هم نماز داریم نمازشان نزد خانه خدا چیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبود پس بچشید عذاب الهی را به خاطر کفرتان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 اموالشان را برای بازداشتن مردم از راه خدا خرج میکنند. آنان این اموال را که برای بدست آوردنش زحمت کشیده اند در این راه مصرف میکنند. اما مایه حسرت و اندوهشان خواهد شد و سپس شکست خواهند خورد و در جهان دیگر کافران همگی به سوی دوزخ گردآوری خواهند شد. لی امیز الله الخبيث من الطیب ویجعل الخبيث بعضه على بعضیم فيركمه فِي فیركمه جمیع فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون همه به خاطر آن است که خداوند می خواهد ناپاک را از پاک جدا سازد و ناپاک ها را روی هم بگذارد و همه را متراکم سازد و یک جا در دوزخ قرار دهد و اینها هستند زیانکاران قل للذین کفروا ان انته یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا و این فقد مضد سنت الاولین به آنها که کافر شدند بگو چنانچه از مخالفت باز ایستند و ایمان آورند گذشته آنها بخشیده خواهد شد و اگر به اعمال سابق بازگردند سنت خداوند در گذشتگان درباره آنها جاری می‌شود. و حکم نابودی آنان صادر میگردد و قاتلهم هم لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله فإن تهو فإن الله بما يعملون بصیر و با آنها پیکار کنید تا فتنه برچیده شود و دین و پرستش همه مخصوص خدا باشد و اگر آنها از راه شرک و فساد بازگردند و از اعمال نادرست خودداری کنند خداوند آنها را میپذیرد خدا به آنچه انجام میدهند بیناست وإ دو فمون أنَّ الله مولاكم نعمل المله و نعمن نصير و اگر سرپیچی کنند بدانید ضرری به شما نمیرسانند خداوند سرپرست شماست چه سرپرست خوبی و چه یاور خوبی؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسًا وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبدنا يوم الفرقان يوم الفرقان يوم الجمعان والله على كل شيء قدیر بدانید هر گونه غنیمتی به آورید خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل روز درگیری دو گروه با ایمان و بی ایمان روز جنگ بدر نازل کردیم ایمان آورده اید و خداوند بر هر چیزی تواناست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 ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم در آن هنگام که شما در طرف پایین بودید و آنها در طرف بالا و دشمن بر شما برتری داشت و کاروان قرش پایین تر از شما بود و وضع چنان سخت بود که اگر با یک دیگر وعده میگذاشتید گذاشتید که در میدان نبرد حاضر شوید در انجام وعده خود اختلاف میکردید ولی همه اینها برای آن بود که خداوند کاری را که می بایست انجام شود تحقق بخشد تا آنها که هلاک و گمراه میشوند از روی اتمام حجت باشد و آنها که زنده میشوند و هدایت مییابند از روی دلیل روشن باشد و خداوند شنوا و داناست ای که که الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم كثيرا لفشلتم لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولیکن الله سلم اینهو علیمون بذات صدور در آن هنگام که خداوند تعداد آنها را در خواب به تو کم نشان داد و اگر فراوان نشان میداد مسلما سست سوست می شدید و در باره شروع جنگ با آنها کارتان به اختلاف میکشید. ولی خداوند شما را از شر اینها سالم نگه داشت به آنچه درون سینه هاست داناست و ایذ یریکموهم ایذ التقیتم فی اعیونکم قلیلا و یقللکم فی اعیونیم لیقضی الله لیقضی الله امرا کان مفعولا و آن هنگام که در میدان نبرد با هم روبرو شدید آنها را به چشم شما کم نشان می داد و شما را نیز به چشم آنها کم می نمود تا خداوند کاری را که می بایست انجام گیرد صورت بخشد و همه کارها به خداوند بازگردانده می شوند يا ايها الذین آمنوا اذا لقيتم فئا فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در میدان نبرد با گروهی روبرو میشوید ثابت قدم باشید و خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید و اطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين و فرمان خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و نزاع و کشمکش نکنید که سوسپ شوید و قدرت و شوکت شما از میان برود و صبر و استقامت کنید که خداوند با استقامت کنندگان است ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط و مانند کسانی نباشید که از روی هوا پرستی و قرور و خودنمایی در برابر مردم از سرزمین خود به سوی میدان بدر بیرون آمدند و مردم را از راه خدا باز می‌داشتند و سرانجام شکست خوردند و خداوند به آنچه عمل می‌کنند احاطه و آگاهی دارد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 كم انني ارى انني ارى ما لا ترون انني اخاف الله والله شديد آور هنگامی را که شیطان اعمال آنها را در نظرشان جلوه داد و گفت امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نمیگردد و من همسایه و پناه دهنده شما هستم. اما هنگامی که دو گروه کافران و مؤمنان مورد حمایت فرشتگان در برابر یکدیگر قرار گرفتند به عقب برگشت و گفت: من از شما بیزارم من چیزی می بینم که شما نمی بینید. من از خدا میتسم خداوند. سخت کیفه است اذ یقول المنافقون والذين في قلوبهم برد غر هؤلاء دینهم ومن یتوکل على الله فإن الله عزیز حکیم و آنها که در دلهایشان بیماری است میگفتند، این گروه مسلمانان را دینشان مقرور ساخته است آنها نمیدانستند که هر کس بر خدا توکل کند پیروز می‌گردد خداوند قدرتمند و حکیم است وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كفروا الْمَلَائِكَتُ يَضْرِبُونَ وجوههم وَأَدْبَارَهُمْ وذوقوا عذاب الْحَرِيقُ و اگر ببینی کافران را هنگامی که فرشتگان مرگ جانشان را میگیرند و بر صورت و پشت آنها میزنند و میگویند بچشید عذاب سوزنده را به حال آنان تأسف خواهی خورد. بما قدمت ايريكم وان الله ليس بظلام للعبيد. این در مقابل کارها است که از پیش فرستاده اید و خداوند نسبت به بندگانش هرگز ستم روا نمی دارد. قدئم آل فرعون والذین من کثروا بآیات الله <سؤال> الله <سؤال> بذنوبهم الله العقاب حال این گروه مشرکان همانند حال نزدیکان فرعون و کسانی است که پیش از آنان بودند آنها آیات خدا را انکار کردند خداوند هم آنان را به گناهانشان کیفر داد خداوند قوی و سخت کیفر است. ذالك بان الله لم يكن غيرا نعمه أنعمها على قوم حتى حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم. این بخاطر آن است که خداوند هیچ نعمتی را که به گروهی داده تغییر نمی‌دهد جز آنکه آنها خودشان را تغییر دهند و خداوند شنوا و داناست. کذب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآيات ربهم فاهلكناهم بذنوبهم و آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين این درست شبیه حال فرعونیان و کسانی است که پیش از آنها بودند آیات پروردگارشان را تکذیب کردند ما هم به خاطر گناهانشان آنها را حلاک کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم و همه آنها ظالم و ستمگر بودند این نشر و الدواب عند الله الذین کفرون فهم لا يؤمنون یقین بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمی همان کسانی که با آنها پیمان بستی سپس هر بار اهد و پیمان خود را می شکنند و از پیمان شکنی و خیانت پرهیز ندارند فَإِمَّا فا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدِ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ اگر آنها را در میدان جنگ بیابی آنچنان به آنها حمله کن که جمعیتهایی که پشت سر آنها هستند پراکنده شوند شاید متذکر گردند و عبرت گیرند وَإِنَّ مَا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَتًا فَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ و هرگاه با ظهور نشانه از خیانت گروهی بین داشته باشی که عهد خود را شکسته حمله قافل گیرانه کنند به طور عادلانه به آنها اعلام کن که پیمانشان لغو شده است زیرا خداوند خائنان را دوست نمی دارد لا يحسبن الذين انهم لا آنها که راه کفر پیش گرفتند گمان نکنند با این اعمال پیش برده اند و از قلم رو کیفر ما بیرون رفتهاند. آنها هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد و لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين و من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ماتون فی قوم شیعین فی سبیل الله وفع ایلیکم و انتم لا تظلمون هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابل با آنها آماده سازید و همچنین عصبهای ورزیده برای میدان نورد تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خیش را بترسانید و همچنین گروه دیگری غیر از اینها را که شما نمیشناسید و خدا آنها را میشناسد. و هرچه در راه خدا و تقویت بنیه دفاعی اسلام انفاق کنید به طور کامل به شما بازگردانده میشود و به شما ست هم نخواهد شد. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اگر تمایل به صلح نشان دهند تو نیز از در صلح در و بر خدا توکل کن که او شنوا و داناست وایريدو یا خ كف این حك الله و الذي ع دکبی سمری و بمؤمین و اگر بخواهند تو را فری دهند خدا برای تو کافی است او همان کسی است که تو را با یاری خود و مؤمنان تقویت کرده. والالف بين قلوبهم لو ان فقت ما في الارض جميعا الا الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم و دلهای آنها را با هم الفت داد اگر تمام آن را روی زمین است سرف می کردی که میان دلهای آنان الفت دهی نمی توانستی ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد او توانا و حکیم است یا نبی حسب کالله و من اتبع من المؤمنین ای پیامبر خداوند و مؤمنانی که از تو پیروی می کنند، برای حمایت تو كافی است فقط برانهاي كيكن. يا اي نبي حريض المؤمنين على القتال. إن يكون منكم عشرون صابرون يضرب مئتين و این یکم من کمیعتن یغلبو الفا من الذین کفرون بی انهم لا یفقهون ای پیامبر مؤمنان را به جنگ با دشمن تشویق کن هرگاه بیست نفر با استقامت از شما باشند بر دویست نفر قلبه میکنند. و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند پیروز میگردند چرا که آنها گروهی هستند که نمیفهمند. الآن خفف الله عنكم و علم أن فيكم ضعفا فإن يوم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وان یكون منكم الف یظلموا الفین باذن الله والله مع همکنون خداوند به شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعفی است بنابراین هرگاه یکصد نفر با استقامت از شما باشند بر دویست نفر پیروز میشوند و اگر یک هزار نفر باشند بر دو هزار نفر به فرمان خدا قلب خواهند کرد و خدا با سابران است ما کان لنبی این یکون له اصرا حتی يثخن في الأرض توریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم هیچ پیام حق ندارد اسیرانی از دشمن بگیرد تا کاملا بر آنها پیروز گردد و جای پای خود را در زمین محکم کند. شما متاع ناپایدار دنیا را میخواهید و مایلید اسیران بیشتری بگیرید و در برابر گرفتن فدیه آزاد کنید ولی خداوند سرای دیگر را برای شما میخواهد و خداوند قادر و حکیم است لولا کتاب من الله سبق لمسكم لمسكم فيما اخذتم اگر فرمان سابق خدا نبود که بدون ابلاغ هیچ امتی را کیفر ندهد به خاطر چیزی که گرفتید مجازات بزرگی به شما میرسید. تكونوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم اکنون چه غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید و از خدا بپرهیزید خداوند آمرزنده و مهربان است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 یعطی خیرا مما اخذ و یغفر والله غفور رحیم ای پیامبر به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند خیری در دلهای شما بداند و نیات پاکی داشته باشید بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما میدهد و شما را میبخشد و خداوند آمور و مهربان است و این یریدون كف فقد خانوا الله من قبل فأمکن منهم والله علیم من حکیم اما اگر بخواهند با تو خیانت کنند تازگی ندارد آنها پیش از این نیز به خدا خیانت کردند و خداوند شما را بر آنها پیروز کرد خداوند دانا و حکیم است این الذين امنوا وهاجروا و هاجروا و جهادوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله فی سبیل الله والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض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 والله بما تعملون کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند و آنها که پناه دادند و یاری نمودند آنها یاران یکدیگرند و آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند هیچ گونه ولایت در برابر آنها ندارید تا هجرت کنند و تنها اگر در حفظ دین خود از شما یاری طلبند بر شماست که آنها را یاری کنید جز بر ضد گروهی که میان شما و آنها پیمان ترک مخاسمه است و خداوند به آنچه عمل میکنید بیناست والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض کسانی <تصفيق> که کافر شدند، اولیا و یاوران و مدافعان یکدیگرند. اگر این دستور را انجام ندهید، فتنه و فساد عظیمی در زمین روی می‌دهد. والذين آمنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وانها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند و آنها که پناه دادند و یاری نمودند آنان مؤمنان حقیقی هند. برای آنها آمرزش و رحمت خدا و روزی شایسته است من بعد و و معكم و اونو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم وكشانی که بعدا ایمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد نمودند از شما هستند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر در احکامی که خدا مقرر داشته از دیگران سزاوارترند خداوند به همه چیز داناست